سيو 8 امين حديث فرمود رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم بركه الغنم الغنم ذروه الغنم غنيمه غنیمتی ون غنم از گوسفند و بز اون حيوان چهار پایی که علف میخوره میره در صحرا و بیابون و ف... از شیرش به ما میده و بچه میزايه و از اون گوشتش ما میخوریم این برکته این روزییه هست که الله به همه کس نمیده و شاید بگم بیشترین چیزی که در این بحث گوسفند و بز هست بحث شغل انبیا که بهش اهمیتی بیشتری هم میده رسول الله صلی الله علیه و میگه من چوپان بودم چوپانی میکردم و شغل انبیا چوپانیه گوسفندداری و بزداری برکت خاص خودش داره خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله میگه غنیمه برکه خیر و گوسفند دری صاحب میشه که درهای روزی برات باز بشه و در روایت اراصاتونه اتخذ الغنم فان فيها برکه حتما بز گوسفند برای خوتن بگیری چون برکت توشون هست این خیر و برکتی هست و درهای روزی هست در واقع که صاحب میشه انسان بالاخره یک دری از درهای روزی غیر از تجارت غیر از کار و کاسبی یک دری هست که انسان اگر بتونه انجامش بده بتونه اینجوری شغلی برای خودش انتخاب بکنه که با هوا و نعمت کار خیلی خوبیه مخصوصا در بحث نشانه های قیامت که رسول صلوات میگه که وقتی که فتنه ها زیاد میشن برای خوتن گوسفند بگیری بک این شغل انبیاس و برکت خاص خودش و اهمیت خاص خودش داره